اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی نبی نا وعاله و آله خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر الله که از نعمت و صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گونه گزند و برای هم بدور باشید طاعات و عبادات شما هم قبول درگاه خداوند متعال و انشاءالله که در این لیالی قدر بهترین تقدیرات و هم خداوند برای شما تقدیر فرماید اما بحث ما در قصر به اینجا رسید که ما قصر رو تعریف کردیم گفتیم عبارت است از تخصیص چیزی به چیزی به طریق مخصوص بعد طرق قصر رو براتون گفتیم اون طرق مخصوص رو به طریق مخصوص طرقش رو گفتیم شهار تا بود نفی و استثناء انما نما و نما بلو لا و لاکند و تقدیم ما حق و بعد گفتیم هر قصری دو تا طرف داره یکی مقصور و دیگری مقصور رو و گفتیم هر قصری به دو دسته تقسیم میشه یا قصر صفت در موصوف یا موصوف در صفت و گفتیم منظور از صفت و موصوف در اینجا صفت و موصوف الغوی است گفتیم که منظور صفتو موصوف الغوی است و گفتیم که صفت اونیه که قائم به ذات نیست و موصوف اونیه که قائم به ذات بعد در بحث دوممون اومدیم گفتیم که ما قصر رو تنسیم میکنیم به طور مطلق. حالا چه قصر در موسف، چه موسف در به دو دسته. یکی قصر حقیقی و دیگری قصر اضافی. و خدمت شما گفتیم که قصر حقیقی عبارت است از تخصیص هست. قصر چیزی در چیزی در مقابل همه چیز یه چیز رو در یه چیزی قصر کنیم در مقابل همه چیز بگیم این مال اینه و مال هیچی دیگه نیست درست شد این میشه قصر حقیقی که خوندیم که یه یعنی انقصم القصر به اعتبار و والواقع قسمه حقیقیان و هو انیختست در مقصور و مقصور علی به حسب و والواقع مع لا تاع و لا اصلا بعد گفتیم مثال زدیم که ما رازق الا الله رازقی غیر از خدا نیست یعنی رازقی هر مال خداست مال هیچکی دیگه نیست لا اله الا الله اله بودن محبود بودن ازان خداست و ازان هیچکس دیگری نیست بعد گفتیم یه موقع فکر نکنید که این قصر حقیقی فقط مال خداوند متعال چون مثال ها رو ما اینطوری زدیم بعد مثال های کتاب رو که یک و دو بود که لا یوروی مصر من الانهاره لنیلو که مصر رو از نهرهای دنیا فقط و فقط رود نیل آه؟ از رودهای دنیا فقط رود نیل است که مصر رو سیراب میکنه هیچ رود دیگری سیر آب کردن مصر از انهار دنیا متعلق به رود نیل است قصی صفت در موصوف بود اروا سیر کردن از آب سیر آب کردن منحصر در رود نیل این نما الله که با این نما گفته عرازق رازق بودن و منحصر در الله کرد این قصر حقیقی اما قصر دوم قصر اضافی یا نسبی اینو خوب توجه کنید قصر اضافی یا نسبی عبارت است است قصر چیزی در چیزی نه در مقابل همه چیز بلکه در مقابل چیز یا چیزهایی حالا یکی دوتا مونده ب چیز معینی بین متکلم و مخاطب قصر چیزی در چیزی معین آه قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطب نسبت به یک چیز معین بین متکلم و مخاطب یعنی نسبیه ما یه چیزی رو در یه چیزی مقصور میکنیم نه نسبت به همه چی بلکه نسبت بگیر به چیز معینی که بین من و مخاطب هست حالا ببینید وقتی شما میگید که ما رازقون الله رازق نیست غیر از خدا شما میگید رازقیت مال خداست مال هیچ که دیگه نیست اصلا بین متکلم مخاطب کس دیگری نیست رازقیت مال اینه مال هیچ لا دیگه مصر لا یوروی مصرم نلنهار لنیل سیراب کردن مصر از نهرهای دنیا منحسره در رود نیله نه هیچ رود دیگه هیچ رود دیگری تو دنیا نیست خنیه اصلا بین متکلم و مخاطب چیز دیگه نیست بلکه این مال اینه و مال هیچ دیگه نیست اما اما اینو گاهی اوقات میشه که خیلی زیادم هست این وصل اضافی ها که فهم این مهمه که بین ها اینو فهمیدن باعث میشه شما عبارت رو بفهمی ولی کج میفهمی بحث اضافی رو حقیقی میفهمی معنا از این دیگه میشه. قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطب. اون چیز معین بین متکلم و مخاطب ما کج از قرینه؟ از قرائنی که موجوده. نگاه کنید. فرض کنید فرض کنید ما داریم بحث میکنیم یعنی من با یه نفری دارم بحث میکنم با شما مثلا دارم بحث میکنم سر این که اعلم اعلم یعنی مشهد اعلم اونی که اعلمه آقای زید یا عمره داریم با شما بحث میکنید. بحث ما سر زید است و امر. داریم با هم بحث میکنیم که زید عالمه یا امر عالمه خب من میبینم شما میگید که عمر عالمه من احساس میکنم شما میگه عمر عالم من برمیگردم به شما میگم فلانی ما عالم الا زیدون ما اعلم الا زید فلانی اعلم نیست مگر زید زید اعلمه اعلمیت مال زیده مال دیگه. این هیچ کسی دیگه کیه امریه که تو میگی حالا یه نفر دیگه از بیرون بیاد بگه آه چی دارید میگید زید اعلمه یا همه اعلمه بکر از این دوتا اعلمتره خالد اعلمتره از صداشونه بگه اصلا با اونه خواهی نداریم مالبا بکر خالی. بحث ما با ایشون سره اینکه زید عالم است یا امر علم بود منم برگشت شما گفتم او فقط زیده یعنی امر که تو میگی نیست بین متکلم و مخاطب کاری به کار بقیه دیگه نداریم نه نسبت به همه چیز او؟ مثلا حالا این مثال چی بود معلم الا دست بحث صفت در منصور قصره بگید صفت در موصوف بود گفتیم عالمیت مال زیده مال است. حالا گوش کنید یه موقع هستش که ما داریم بحث میکنیم با شما که زید نصر خوب مینویسه یعنی کاتبه یا شعر خوب میگه یعنی شاعره زید کاتب خوبیه یا شاعر خوبیه؟ من برمیگردم اونم پیش شما میگی زید شاعر خوبیه من میگم نه نه نه ما زیدون الا کاتب ما زیدون الا کاتب زید نیست مگر کاتب یعنی زید فقط کاتبه یعنی شاعری که تو میگی نیست کاتبه خوب می نویسه، نصر خوب می نویسه. شعر نمی خوب می نویسه. آیا اینجا ما زید رو منحصر در کاتب بودن میکنیم یعنی میگیم زید کاتبه یعنی هیچ صفت دیگه نداره مثلا بهرابانم نیست نمیتون با اونا ما کاری نداریم ما دو تا صفت بود داشتیم بحث درش میکردیم یکی کاتب بودن یکی شاعر بودن ما گفتیم زید کاتبه یعنی اونی که تو میگی که شاعر بودنه نیست ببینید پس قصر اینجا چی شد؟ قصر موسوف در صفت شد زید رو ما منحصل کردیم در کاتب بودن نه در مقابل بقیه صفات بلکه که در مقابله بگید یه صفت ای که بین من و متکلم بوده من و متخاطب بوده به اسم شاعر بود پس بنابراین این قصر اضافی قصر چیزی در چیزیست در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطب در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطب حالا یه توجهی بکنید وقتی میدیم چیز معین من خیلی احساس مومن توجهتون به این بره که حتما باید یه چیز معین ممکنی دوتا باشه. که سه ولی محدوده معینه همه چیز نیست مثلا الان ما داریم سر سه نفر بحث میکنیم زید و عمر و بکر که کدومشون عالم هست من و شما داریم سر سه نفر بحث میکنیم. من میگم ما عالم الا زید عالم نیست مگر زید یعنی چی؟ یعنی اون امر و بکری که شما فکر میکنی نیست دیگه ما با خالد و جعفر کاری نه داریم نمیگه احلا داری مال زید نسبت به همه بلکه نسبت به اونی که معین است بین من و متکلم من متکلم با مخاطب و سرش بحث بود اینو میگن اضافی قصف چی چی؟ اضافی یعنی نسبی یعنی نسبت به چیزی که معین بین متکلم و مخاطب نگاه کنید به اضافی جون و هو ماکان علی اختصاص فیهه به حسب ال اضافته قبل از اضافه داخل پرانتز بنویسید به حسب نسبته الی شیء معین به حسب اضافه یعنی نسبت الی شیء معین بعدش بنویسید بین متکلم و مخاطب شیء معین بین متکلم و مخاطب هر چیز نه نسبت به همه چیز پس اضافی و هوا ماکان اختصاصو فیه به حسب اضافته ای نسبته این شیء معین بین المتقابل مخاطر. انشاء الله اینو فهمیدید. انشاء الله اینو فهمیدید که در قصر حقیقی ما چیزی رو در چیزی منحصر می در مقابل همه چیز. ولی در قصر اضافی چیزی رو منحصر در چیزی میکنیم نه در مقابل همه چیز بلکه در مقابل چیز معینی که بین متکلم و مخاطب این تا اینجای مطلب که مطلب اساسی بود حالا من اگر دو تا نکتر رو بگم بحث رو تموم کردم دو تا نکتر رو بگم دیگه بحث و بحث رو تموم کردم یک یک بنویسید دستر حقیقی دستر حقیقی امکان وجود آن در قصر صفت در موصوف هست و دیده می شود. اما دسر حقیقی در جایی که دسر از نوع موصوف در صفت باشد قابل تصور نیست و امکان نداره چی گفتیم؟ گفتیم قصر حقیقی که قصر چیزی در چیزیه در مقابل همه چیز این در این در قصر قصر حقیقی که قصر, قصر حقیقی که قصر چیزی در چیزی هست در مقابل همه چیز این در قصر صفت در موصوف امکان داره و دیده میشه وجود داره ولی در قصر موصوف در صفت امکان نداره و دیده هم نمیشه نگاه کنید ما میتونیم بگیم ما رازقون الا الله رازقیت مال خداست مالشی دیگه نیست میتونیم بگیم سیراب کردن سرزمین مصر رو مال رود نیله مال هیچ رود دیگری نیست نمیتونیم بگیم میتونیم بگیم مثلا اصلا هر, تو هر کسی میتونه یه صفت اختصاصی داشته باشه یه صفتی باشه مالی یه نفر باشه مالیش که دیگه نباشه درست شو؟ یه نفر یه تنها دختر پدرش تنها پسر پدرش میگم تنها دختر این پدر این دختر بودن برای این منحصر در فرزنده نیشه صفتی رو میشه در موصوفی منحصر کرد دوست دوست. این هست زیاد آماست میشه که صفتی مال یه موصوف باشه مالی هیچی دیگه بگید نباش اما اما موسوخی داشته باشیم که یه صفت فقط داشته باشه و هیچ صفت دیگری نداشته باشه این به دو دلیل امکان ندار به دو دلیل امکان نداریم یک یک ما احاطه به صفات یک موصوف نمیتونیم داشته باشیم که بگیم این موصوف منحصر در این صفته و هیچ صفت دیگری ای نداره. نمیشه. شده نه؟ این دلیل اول خیلی هم قوی نیست این دلیل دلیل دومش قوی تر. این عنوان دلیل بقول قول خودمون فرعی داریم ذکر میکنیم. که ما نمیتونیم منحصر کنیم. موسفی رو در یه سفاتی بگییم این موسوف این سصف داره هیچ سفات دیگه ای نداره مگه همه سفات دیگه شما میدونید که بگیری سفات دیگه مگه تونستید همه سفات یک چیز رو بررسی کنید که بگید این اینصففتو داره و دیگه نداره او عدم احاطه ما به سفات موسوف دیگه دلیل اول و اینکه نمیتونیم بگیم این یه سفر داره و هیچ سفات دیگری نداره این دلیل اول بره. درست شد یعنی امکان نداره که ما صفاتی موصوف رو به طور کل بشناسیم درست شد به طور کل بشناسیم بگیم این یه صفت داره و یه صفت دیگه نداره عدم احاطه به صفات محصوف این دلیل اول دلیل خیلی محکمی هم نیست اما دلیل دوم محکم که چرا امکان قصر حقیقی در قصر موصوف در صفت نیست به این دلیل که اگر ما فرض کنیم ببینید زیرا زیرا اگر قصر حقیقی در قصر موصوف در صفت را بپذیریم بپذیریم منجربه منجرب ارتفاع نقیزین می شود منجر من به ارتفاع نقیزین می شود و این محال است و این محال است حالا مثال می زنم این دلیل عقلی قویه و نمی شما را ما فرض کنید می گیم الف موصوف الف منحصر است در صفت به الف منحصر است در صفت ب. و هیچ صفت دیگری ندارد. گفتیم اولا با دلیل اول نمیتونیم ما بقیه صفات رو بشناسیم که بگیم داره یا نداره. چون علم ما به اون نهایت نمیدونه به صفات دیگه یک بین بی‌نهایت صفت ممکنه داشته باشند. خیلی صفات داره. این یک دلیل دوم. اگر ما بگیم الف منحصر در ب است و صفات دیگری ندارد از باب بپرسند حالا صفت ب را دارد چی باید بگیم؟ باید بگیم نداره دیگه بگیم علف منحصر در صفت ب بعد بگن صفت جیم رو داره باید چی بگیم؟ بگیم نداره شاید داشته دوشه که غلطه بگیم نداره بعد بگن این جیم یه زدی داره صفتش خب اونو داره؟ باید بگیم اون هم نداره چون اونم با صفت دیگه مثلا حالا نمونه مثال بزنید مثلا بگن زید منحصر در شجاعت هیچ صفت دیگه آیه نداره باید بگیم این زید جود داره کرم باید بگیم نه چون منحصر در شجاعت دیگه دیگه جود کرم نداره باید بگیم با بخل داره بعد بگیم بخلم نداره این زید منحصر در شجاعته خب باید بگیم این زید منحصر در شجاعته خب زنده هست باید بگه نه جو زنده بودن هم صفحه دیگه نه بگیم مرده هست باید بگه نه پس امکان ندارد زیرا منجر به ارتفاع نقیزین این میشه ما یه معصوفی رو منحصر در یه بگید صفتی میکنیم باید بگیم صفت دیگر را ندارد ضد اون صفت دیگر نقیض اون صفت دیگر را هم ندارد پس قصر حقیقی در قصر صفت در معصوف دیده میشه فراون، ولی در قصر موصوف در صفات دیده نمی شود زیرا یک ما احاطه به صفات موصوف رو نداریم دو منجر به ارتفاع نقیص می منجر به این میشه که به محال برسه اینم دلیل دوم که دلیل دوم عقلی و خیلی آدم. این ان فهمیدید و چی گفتیم گفتیم قصر حقیقی قصر حقیقی که قصر چیزی در چیزی است در مقابل همه چیز در نوع قصر صفت در موصوف دیده میشه فراهن چرا چون میشه یه صفتی مالی یه موصوف باشه مال نباش. دیگه نباشه داریم صفاتی از مالی یه موصوفه و مال هیچ محصوف دیگه نیست خاتم و نبیگیم بودن مال پیامبر ماست مال هیچ پیانبر دیگری نیست درست شده نه؟ کندن در خیبر منحصر به امیر المامینه علیه و تهیه مال هیچ که دیگه نیست درست شده نه؟ سید و منحصر در حضرت عبا الله سید و کربلا منحصره در حضرت عبا عبدالله سید و عبدالله. سید و, و مال دیگه نیست صفت میتونه یه موصوف باشه مالیشگی دیگه نمیشه شده نه اما موصوف اگر بخواد منحصر در یک صفت باشه و صفات دیگر رو هیچ نداشته باشه این ممکن نیست به دو دلیل یکی اینکه ما صفات دیگر رو نمیتونیم احاطه داشته باشیم یک دوم اگر هم به فرض احاطه داشته باشیم منجر به ارتفاع نقیزه میشه چون باید بگیم زید منحصر در این صفته بعد میگیم صفت دیگر رو داره میگه نه میگیم ضد اون صفت رو داره میگه نه نقیض اون صفت رو داره میگه نه مثلا میگه زید منحصر در شجاعته زید منحصر در شجاعته و هیچ صفت دیگی نداره ما میگیم خب هیچ صفت دیگی نداره کرم داره میگه نه میگیم بخل داره میگه نه اون خب نمیشه که نه هم کرم نداشته باشه هم بخل نداشته چون این ارتفاع امکان نداره. دو سه بار توضیح دادم این فهمید حالا نگاه کنید تو کتاب یه مبحثی رو میگه حاشیه یک کتاب رو ببینید القصر الحقیقی قصر حقیقی یک سرو میگه یک سرو بالاش منیست 99 درصد یک سرو 99 درصد کسی میاد فی قصر صفت علموسوف در قصر صفت در موصوف کما رعی شما دیدید تو لا توی ارازوغا ار اینم ارازوغا الله در قصر صفت در موصوف کما رعی تا فیلم ولا یکادو یوجد یعنی یک درصد. و نزدیک از دیده نشود در قصر موصوف در صفت خب این چه که این حاشیه کتاب گفت با حرف من یه مقدار فرق کرد من گفتم اصلا محاله این میگه قصر حقیقی در قصر موصوف در صفت یک درصد میاد ولا یک و, و نزدیک از دیده نشد ببینید گوش کنید. کنید اونی که من عرض کردم عالم واقع. گفتیم قصر حقیقی منحصر است در قصر صفت در موصوف و در قصر موصوف در صفت دیده نمیشود و امکان ندارد به دو دلیل یک ما احاطهٔ به صفات یک شی نداریم دو در صورت فرض احاطه منجر به ارتفاع نقیزین شود درست شد به این دلیل امکان اینکه شما قصر حقیقی از نوع قصر موسوف در صفت داشته باشید ممکن نیست پس چرا کتاب میگه یک درسد ببینید یه تفسره این تفسره رو بفهمی کار من درست میشه نوعی از قصر حقیقی هست نوعی از قصر حقیقی هست در حد یک درصد که به آن قصر حقیقی ادعایی که به آن قصر حقیقی ادعایی میگویند که به آن قصر حقیقی ادعایی میگویند و در این نوع از قصر یعنی حقیقی ادعایی یک درصد یک درصد یک درصد هم بیشتر نیست یک درصد قصر موصوف در صفت دیده می شود. دیده می شود به جهت مبالقه به جهت مبالقه اگر نگاه کنید این هم مجازه ها اون که من گفتم محاله محاله این در واقع مجاز فرضی حقیقی ادعایی حقیقی حقیقی نیست یعنی قصر حقیقی حقیقی در نوع قصر موسوف در صفت دیده نمیشه محاله اون جای خود حرف زدیم ما اما به شکل حقیقی ادعایی یعنی مجازی دیده میشه مثلا چطور؟ فرض کنید فرض کنید فرض کنید یک صفت در یک موصوف از نظر من خیلی بارزه یه صفت از نظر من در یک موصوف خیلی بارزه خیلی خیلی میخوام مبالغه کنم بگم این موصوف منحصره در این صفته و صفات دیگهش کل عدمه صفات دیگهش از نظر من هیچه نیست مبالغه است دیگه مثلا امیر به دلیل ادالتش خیلی خیلی عدالت بالایی داره صفت عدالت در او بارزه من میگم ما علیون الا عادلن ما علی الا عادل امیرالمومنین نیست مگر عادل علی منحصره در عدالت است و بس یعنی چی؟ یعنی صفات دیگرش که عابد بودن، شجا بودن، کریم بودن اینها هست اینا رو من اصلا در مقابل عادل بودنش ندیدم گفتم هیچ؟ هیچ نهره همه رو بذارید کنم. فقط علی منحصر در عادل بودن. مبالغه است. در شعرها در مطالب این یک درصد ممکنه دیده. بشه اینجا ما علی رو منحصر در عادل بودن کردیم. و بقیه صفات رو همه رو گفتیم نیست ها آیا به طور حقیقی گفتیم نیست نه به طور حقیقی اصلا محاله ولی به طور مجازی ادعایی که میگن حقیقی ادعایی حقیقی ادعایی گفتیم که بقیه صفات شما اصلا بگید ندیدیم بقیه سفاتش از نظر ما وجود ندارد. شد. اینجاست که اینجاست که میگه لا یکاد و یوجند ویلا قصر موصوف در صفت به طور حقیقی حقیقی امکان ندارد ولی به شکل حقیقی ادعایی در حد یک درصد اونم برای خاطر مبالغه وجود دارد اونم برای خاطر مبالغه وجود دارد شد؟ پس چی گفتیم؟ خیلی ساده گفتیم قصر حقیقی در قصر موصوف در صفت ممکن نیست به دو دلیل یک احاته به صفات یک شی نداریم دو موجب ارتفاع نقیزه این می میشود تبصره گاه در حد یک درصد قصر حقیقی ادعایی در قصر موصوف در صفت دیده می شود به جهت مبالغه و اون در جایی است که ما موصوفی را منحصر در صفتی میکنیم و نظر ما این است که به جهت مبالغه بگیم این موصوف منحصر در این صفت است و هیچ صفت دیگری به جهت مبالغه میگیم ندارد زیرا از نظر ما صفات دیگر او در مقایسه با این صفت کل عدم است انگار اصلا نیست انگار اصلا نیست برای این بود که کتابتون گفتش که ولا یکاد و یوجد فی جد و فیر اصل این خاشیه های مبهم زدن و به این شکل بیان کردن بدون توضیح یک مقدار کتاب رو از نظر آموزشی با اون که کتاب آموزشی مصر تحت تحصیل قرار میده که ما خدمت شما اینو ازگید تمام شد حالا گوش کنید ما گفتیم قصر اضافی قصر اضافی عبارت است از قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطب نهارس کردیم دیگه قصر اضافی عبارت هست, هست قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و تبصیلیم قصر اضافی در هر دو دونو قصر دیده می شود قصر اضافی در هر دو نوع قصر دیده می شود یعنی چه قصر صفت در موصوف چه قصر موصوف در صفت قصر اضافی در هر دو تا دیده میشه 50 50 قصر اضافی در هر دونو از قصر چه قصر صفت در موصوف چه موصوف در صفت دیده می شود پنجا پنجا چون اون محالیتی هم که گفتیم دیگه نداره حالا مثال میزنیم یه موقع ما داریم بحث میکنیم سر اینکه اعلم عالم زیده یا امره من میگم نیست عالم مگر زید ما عالم الا زید قم عالم مناسب در زید کرد صفت رو مناسب در نوشت آیا عالمیت مناسب در زید کردم در مقابل همه کس همه کس نه بابا در مقابل امر ما گفتیم عالم مال زید مال امر دوست. منو این آقا داریم بحث می این قصبه صفت حالا یه موقع هستش که منو شما داریم بحث میکنیم سر اینکه زید کاتبه یا شاعر. دیگه با صفات دیگرش کاری نداریم زید کاتبه یا شاعره نصر خوب مینویسه یا نظم خوب میگه من برمیگردم میگم ما زید اله کاتب زید نیست مگر کاتب یعنی شاعر نیست یه کاری به اینکه که جواد کریم بخشنده است شجاع استفاد دیگش نده من میگم زید کاتبه یعنی شاعر نیست نصف خوب می نویسه نظم خوب نمی نویسه این هم قصر موسوف در سفر و فراوانه فراوانه درست شو؟ قصر اضافی قصره چی چی بگید؟ اضافی قصره بگید؟ اضافی هم از نوع قصر صفت در موصوف هم از نوع موصوف در صفت پنجاه پنجاه تو قصر اضافی دیده بشه قصر کردن چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی وی متکلم و بخواده اینه میگن قصر اضافی پنجا پنجا هم هست دیگه هم با قصر صفت در محصوف میاد هم در محصوف در صفت پایین نگاه کنید هاشیه دورو القصر اضافی یعطی کسیرن فی کل من قصر صفت موسوف و قصر محصوف علمحصوف کمار عیتفل هم سر فرق نمید پنجا پنجا به طور مساوی کسیر میاد هم در اول صفات در هم در موضوع است و هو میدانون فسیح لتنافس کتاب و شعرا اینجا یک میدان وسیعی است برای تنافس رقابت کتاب نویسندگان و شعرا این قصر اضافی فراوانه در نوشته های آنها که بین متکلم و مخاطب کسی بوده میگه این مال اینه مال اونی که تو میگی نیست والا این مال اینه صفت مال اینه یا موصوف مال اینه آه صفت در موسوف یا موصوف در صفت قصر میکنه در مقابل آنچه که نظر مخاطب بود درست شد الان نگاه کنید الان نگاه کنید تو مثال های کتاب سه و چار میگه لا جواد ای لا علیون لا جواد جواد یعنی کریم بخشنده هیچ بخشنده ای نیست مگر علی خوب این داشته با یه نفر بحث میکرده سر اینکه بخشنده علی آقاست یا حسن آقا دو نفر بحثشون بوده بخشنده علی یا حسنه حسن دستش به کار خیره یا علی شما برمیگردی که لا جواد الا علی بخشندگی مال علی آقا این مالو حسن که میگیدید حالا یه نفر بیاد بگه آها آه حاتم چی فلانی چی ما سو کاری و اون کار رو بحث داره دو نفر این قصد صفت در موصول بعدی رو نگاه کنید با این نما این نما حسنون این حسن حسن آغاستا اسم علمه این نما حسنون شجا یه کسی اومده داره با هم بحث میکنن اینه این اینکه حسن شجاعه یا حسن آقا بگید کریمه بحث میکنه بعضی میگن حسن شجاه بعضیا میگن کریمه کدوم صفت رو داره حسن آقا شجاعه یا کریمه این آقا برمیگرده میگه حسن آقا شجا هست یعنی کریم که تو میگی نیست شجا هست بله کریم نیست دیگه با صفات دیگرش عالمه آرفه با اوناش دیگه ما رحیمه مهربانه با اوناش دیگه کاری نداریم ما میگیم حسن آقا شجاعه و بگید کریم مثلا نیست عالم مثلا اگه بحث طرف مقابل شجاع باشه نیست اون صفت که بین متکلم و مخاطب بقیه نمیخوایم بگیم حسن آقا منحصر در شجاعته و هیچ صفت دیگری نداری هیچ صفت دیگری بگید عزیزی نمیخواد دیگه بخواد حقیقی حقیقی درست کنی که باطل اصلا نمیشه که حسن اقل منصل در شجاعت کرد و هیچ صفت دیگری نداره چون اولا احاته به صفات نداریم ثانیا منجربه ارتفاع نقیزه میشه اون موقع باید بگیم ها حسن آقا منصل در شجاعته کریم هست میگه نه میگیم بخیل هست میگه نقد نمیشه که بله حقیقی ادعایی چرا ممکنه این حقیقی ادعایی درست کنید بگیم این حسن آقا یه شجاعتی داشته می نهایت که اصلا قابل پیچ تصوری نمی آمده و دیگه نفره اول بوده این شجاعت شجاعتشو بلد کرده و دیگه صفات رو صفر حساب کرده بفت حسن منحصر در شجاعت ویچه این حقیقی ادعایی ولی اینجا بس ما حقیقی ها چیز مج... اضافیه که حسن شجاع هست و کریم نیست. نگاه کنید توی عبارت هایی که ما تا به حال با شما خوندیم درست تو توی بحث رو ببین چون مثال رو توضیح دادم بعد یه نکته هست اون نکته رو بگم دیگه درس تمام میشه یعنی دیگه چیزی برای گفتن نداریم البحث و قدمنا لکه انال القصر یه انقصمو به حسب طرفیه الا قصر صفة على موسوفن و قصر موسوفن على صفت ما گفتیم بر تو که قصر منقسم میشه به حسب طرفینش قصر تقسیم میشه به حسب طرفینش به قصر صفت بر موصوف و قصر موصوف بر صفت و هنان و و ما اینجا میخواییم برای تو بیان کنیم و هنا نورید و انو بیه و ما میخوایم اینجا برای تو مشخص کنیم بیان کنیم انهو یه انقصمو تقسیما آخر که این قصد که قصد صفت در موسف موسف در صفت بود تقسیم دیگری هم داره به اعتبار حقیقت و به اعتبار حقیقت و واقع به دو دسته تقسیم میشه یا حقیقی یا اضافی نسبی تعمل المثالین الول دو تا مثال اول رو نگاه کن که حدیثیه تجد القصر فیه ما باب قصر صفت علی مصوب تو هر دو تا قصر صفت در مصوب شد یکی سیراب کردن بر رود نیل و دیگری رازق بودن برای الله و ازا تدبرت از صفت افی کل من مثال اینه وجد تحنه ها لات و فارق و مصوف ها ایلا آخر مطلب میبینی که این صفت مال این موصوفه به هیچ موصوف دیگری نمیرسه هیچ موصوف دیگری تو عالم نیست که این صفت داشته باشه سیراب کردن سرزمین مست مال رود نیله هیچ رود دیگری نیست و از طرف دیگر رازق بودن من حسر برای خداست و هیچ کس دیگری نیست و یعنی زیرا زیرا ارواؤل عرض المصریت بالمثال لعوله سفت زیرا سیراب کردن سرزمین مصر در مثال اول یه صفت لا تتجاوزون نیل علا قیره مسایر انهار دنیا تجاوز نمیکنه از رود نیل به غیر رود نیل از بقیه سایر یعنی بقیه از بقیه انهار دنیا مم. یعنی از رود نیل نمیگذره و به سوی بقیه رودهای دنیا بره فقط مال رود نیل هیچ رود دیگه نیست که مصرسی ها و رزقوف المثال ثانی صفت هم هم در مثال دوبوم یک صفت لا تتعدا المولا عزوجل لا لا سوا که از مولا خداوند تعالی عزوجل تعدی نمیکنه به قیل خداوند فقط مال خود هست دیگه هست. و یاسم ما القصر و هیها زین این قصرن حقیقیه و این نوع از قصر تو این نوع مثال هاش میان میگن حقیقی قصر چیزی در چیزی در مقابل همه چیز و که کل قصر میاله تعریف میکنه و همچنین هر قصری که یختس و فیه المقصور بالمقصور علیه هر قصری که درش اختصاص پیدا کنه مقصور به مقصور رو نره اختصاصن اختصاص پیدا کنه اختصاصی که منظوراً فیه لن حقیقت و واقع که نظر شده باشه در اون اختصاص و به حقیقت و واقع و همه چیز اختصاص پیدا کنه چیزی به چیزی به نوعی که نظر شده باشه نسبت به همه چیز حقیقت و واقع یعنی چی یعنی به انلا تداه اله غیرهی است به اینکه اصلا از این موصوف تعدی به های دیگه نمیکنه در قصر صفت, صفت از این صفت تعدیر صفات دیگه نمی کنه یعنی هیچ امکان ندارد که بیاید در مقابل چیزی باشه قصر چیزی در است در مقابل همه چیز و کزانی که کل قصر یخت صفیحل مقصور و بلمقصور علی اختصاص هم. اختصاص دارد در اون مغصوب و مغصوبون به نوعی اختصاص داره که نظر شده در اون به حقیقت و واقع به اینکه تعدی نمی‌کنه به غیر اون مغصوبون علی عبد هیچ حالا اما انظر الان مثال این لخیرین. اما دو مثال دیگر رو نگاه کن سه و چهار تجدل قصرتی اوله حمام باب قصر صفتع علی موصوف اولی قصر صفت در موصوف جواب بودن کریم بودن منحصر میخواهد بشه در علی و فیسانی سانی باب قصر موصوف علی الصفت و در دومی از باب قصر موصوف بر صفت حسن در شجاع و از تدبر المسوره في كل منهما وجدته مختصا بالمصوره علی اگر دقت کنی مصور رو در هر یک از اینها میابی اونو که اختصاص داره به مصوره علی بله اضافه خودش میگه عیب نسبت. اختصاص داره به مصوره علی نسبت الی شیء معینه اونجا میخواد بنویسی بین المتکلم و نسبت به یه شیء معین بین متکلم بخواد لا جمیع لا جمعی ما ادا نه نسبت به همه چیز نمیخواد بگه که کریم بودن مال علیه و ما هیچ کس دیگه ای تو عالم نیست زن آن آدم تایی هم هست نمیشه اینو بگی. غلطه که بگی این صفت مال اینه بلکه منظور این, این بوده داشته با اون بحث میکرده سر علی و حسن گفته که شبات بودن مال علی هاست مال حسن آقا نیست حالا یکی به چی؟ می دونم با اون کاری نداریم بحثم و بحثمون سر عهدی و حسن بود لا ایلا جمعی ما. ای. فا ایلال متکلم فیلم سال اول زیرا متکلم در مثال اول یقصد دو قصد میکنه ان یقصد قصد میکنه که قصد کنه صفتا جود قصد میکنه که قصد کنه صفت جود رو علی علیه صفت جود رو بر علی قصر کنه به نسبت ایلا شخص آخر نسبت به یه شخص آخر معینه بینه و بین المخاطب شخص آخری که معینه بینه و مخاطب که خالد حالا ما گفتیم علی و حسن علی و خالد مثلا مخاطب بگه شجا... که جواد بودن مال علی آقاست مال آقا خالد نیست مال حسن آقا که بینشون علی و حسن یا علی و خالد این نوم هست. نیست از حسن نفر بودن علی خالد حسن میگه جواد مال علی آغاز شریم بودن مال علی آغاز یعنی مال خالد و حسن نیست دیگه ما کاری به حاتم تایی و بقیه نداریم و لیسم این قصده هی ان نهازه لا تو جد و فی غیر علی من جمعی افراد الانسان. اصلا قصدش این نیست که بگه که این صفت صفت جواد بودن پیدا نمیشه در غیر علی از بقیه افراد انسان هیچ کسی دیگه نیست اصلا غلط از اگه اینه دار که که غلط فینل خلاف وذاه زیرا واقع حقیقت عالم برخلاف اینه. پوش جواد و کردیم های زیادی از آتمتایی است و کذا کل حال فل مثالستانی و همچنین از حال در مثال دوم که حسن آقل منحصر کرده در شجاع یعنی حسن شجاع هست و منظورینه که، کریم نیست دیگه بقیه صفات شما کاری به کارش نداری چون بحث ما سر شجاعت و کریم بودنش بودن یکی میگفته شجاعت یکی میگفته کریمه متکلم گفته حسن آقا هست. یعنی کریم نیست دیگه اینکه که آلم با صفات دیگرش ما کاری نداری ولی زالکه ما القصرو فیلم اینه قصرم اضافی هم. و به خاطر همین قصر در این دو مثال نامیده میشه قصر اضافی و کزالی که کل قصر و همچنین هر قصری که یکون و تخصیص و فیه هر قصری که میباشد، تخصیص و قصر در آن دل اضافته به نسبت الاشی این آخرت معین بین المتکلم ول الى شيء آخره معین بین المتکلم و مخاطب و همچنین هر قصری که درش تخصیص و قصر در اون به نسبت به شی دیگری است که بگید معین است بین متکلم و مخاطب به این میگن قصر اضافی یک هاشیه مونده که بحث ما توی باب قصر تمام میکنه و بحث قصر از نظر تئوری تمام میشه این از لحاظ کلی تمام میشه دیگه بقیهش باید هرچون بزنیم مثاله دیگه هیچ چیزی که بخواهد به عنوان قاعده بگیم نیست ببینید قصر اضافی چی بود قصر اضافی؟ قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاده. اون شا نسبی جون نسبت به چیزی بود که بین متکلم و مخاطب دوم، قصر اضافی هم در قصر صفت در موصوف دیده میشه و هم در قصر موسوف در صفت هر دوتاش هست. و گفتی یه میدان وسیع بین شعراب و کتاب که رقابت کن. این هم گفتی حالا این نکته سوم رو که میخوام بگم بحث تمامه یعنی اون هاشیه یه که میخوام بخونم از بیرون میگم متوجه میشید بعد من میخوانم ببینید قصر اضافی که با توجه به مخاطب و شیء معین بین متکلم و مخاتب هستش قصر اضافی به سه دسته تقسیم میشون قصر اضافی به سه دسته تقسیم میشون یک گسر اضافی از نوع قلب گسر اضافی از نوع قلب دو قصر اضافی از نوع افراد افراد سه قصر اضافی از نوع تعیین پس قصر اضافی که قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطب بود که هم در قصر صفت در موصوف هم در قصر موصوف در صفت دیده می شود به سه دسته تقسیم میشه یک یک قصر اضافی از نوع قلب دو قصر اضافی از نوع افراد سه قصر اضافی از نوع تایید خب اینم بستگی به مخاطب داره این ستاش بستگی به مخاطب داره الان میگم مثال بزنیم کامل براتون تو مشخص دلست شد فرض کنید همون مثالی که تو کتاب نوشته لا جواد الا علیون این مثال معناش چی بود؟ یعنی جواد بودن مال علی آغاست مال آقای خالد نیست ما دیگه با بقیه کاری نداشتیم تو مثال کتاب دیدی؟ جواد بودن کریم بودن مال بگید علی آواست و مال آقای خالد نیست که شما مدعی هستی خالد بحثمون سر علی و خالده من میگم جواب بودن منحصر در بگید علی آواست خالد دیگه با بقیه ما کاری نداریم دیگه اول دیگه حاتم تائی چی به عنوان ما بحثم شد دو نفر و این آقا داشتیم بحث می‌کردیم سر اینکه جواد علیه یا جوواد خالده منم برگشتم بهش گفتم که جواد فقط علی است یعنی خالدی که تو میگی نیست اینو فهمیدی میشه حالا نگاه کنید این سه جور میشه فرض کنید من سه تا مخاطب دارم مخاطب علف مخاطب ب مخاطب جی همین مثال میزنم اما سه تا مخاطب دارم قصر اضافی هم هست حالا اگر مخاطب اگر مخاطب عکس اون چیزی که من قصر می میکنم را معتقد باشد اگر مخاطب ضد عکس اون چیزی رو که من قصر می میکنم معتقد باشد و من اعتقاد اونو وارونه کنم میشه قصر قلب یعنی نفر علف که جلوی منه همین مثالها نفر علف من که گفتم جواد علیست فقط اون میگفته بگید جواد خالد است فقط من اعتقاد اونو وارونه کردم گفتم نه جواد علی خالد که تو میگی نیست این شه قصر قلب هرگاه مخاطب در خلاف قصر من اعتقاد داشته باشد و من اعتقاد او رو وارونه کنم میشه قصره بگید لب میشه قصر قلب مثل اینکه من میگم لا جواد الا علین به مخاطبی که معتقد است خالد جواد است و علی جواد نیست وارونه کردیم اعتقادش قصر قامل. اما دومی مخاطب ب قصر افراد هرگاه مخاطب اعتقاد به اشتراک داشته باشد مخاطب معتقد به اشتراک باشد و من اعتقاد او را دو نیم کنم نیمی را بپذیرم و نیمی را نافی کنم نیمی را بپذیرم نیمی را نافی کنم به این میگن قصر افراد مثلا افراد یعنی قذف کردن افراد یعنی قطع اون که قلب گفته بودن چرا چون من برخلاف اعتقاد او میگفتم اون میگفت خالد جواده من گفتم خیر جواد علی آغاز خالد نیست اینجا اعتقاد او را نصف میکنم نصفشو میپذیرم نصفشو نمیپذیرم این مخاطب کیه؟ این مخاطب اینجا همین تو لا جواده الا علیون این مخاطب میگه هم علی جواده هم خالد جواده میگه هر دوتا اصلا آقا هر دوشون بخشنده هر دو. من میگم نه نه نه لا جواده الا علی اون نمیگه علی جواد نیست مثل نفر اول خالد جواده بلکه میگه هم علی جواده هم خالد جواده من میگم نه جواد بودن مال علی آقاست مال خالد نیست این میشه قصره بگید. اضافی از نوع افراده قصر اضافی از نوع بگو افراد چرا گفتن بهش افراد چون افراده یعنی قطع افراد یعنی قطع کردن چون ما اعتقاد مخاطب رو قطع میکنیم نصفشو میپذیریم پنجاه درصد میگیم جواد علیه نصفشم نمیپذیریم میگیم خالد نیست قصر کردیم که گفتیم جواد علیه یعنی خالد نیست دیگه اون معتقد بود هم علی هم خالد هر دو جواد میشه قصر افراد قصر تعیین چیه نفر سوم جیم نفر سوم قصر تعیین جاییه که مخاطب مونده توش میگه بخشنده خلاصه یا علیه یا خالده یا هر دو یا اینه یا اونه یا هر دو مونده توش نمیدونه کدومه بحث داریم میکنیم میگه شنیدم علی بخشنده است از اون اونورام شنیدم خالد بخشنده است هر دوشون بخشندند هیچکیشون بخشنداست اون یکی نیست نمیدونم دارم بکنم داره ما برمیگردیم میگیم آقا لا جواده الا علی براش تعیین میکنیم بخشنده بودن مال علی آقاست مال اون خالد که شنیدی نیست موندی توش میشه قصر تایید؟ پس در قصر قلب چرا بهش گفتن قصر قلب چون ما دگرگون میکنیم وارونه میکنیم اعتقاد مخاطب رو در لاجواد الا علیون یه مثاله به سه نفر میگیم نفر اول که قصر قلب معتقده که خالد جواده علی نیست میشه قصر قرد. نفر دوم معتقد هم خالد جواده هم علی جواده ما میایم نصف میکنیم اعتقادش میشه قصر افراد نفر سوم نفر سوم مونده توش میگه نمیدونم علی جواده خالد جواده هر دو جوادن کدومه مونده این میگیم لا جواده الا علیون براش تعیین میکنیم پس ببین یه مثاله با شناخت مخاطب سه گونه میشه پس قصر اضافی که هم در قصر صفت در موصوف هم در موصوف در صفت با در نظر گرفتن اعتقاد مخاطب سه جور ممکنه که بیاد. این اعتقاد مخاطب رو ما از قرائن حالا مثالهایی که بزنیم متوجه میش از قرائن میفهمیم که آیا این نوع قصر که قصر اضافیه از نوع قصر قلب، از نوع قصر افراد یا از, از نوع قصر تعینه حالا حاشیه کتاب خونم ببینید میگه که ینقسم القصرو الاضافي منحصر از قصر اضافی به اعتبار حال مخاطب به اعتبار حال مخاطب ثلاثه اقسام تقسیم میشه به سه بس. و کرد و اون بیان اینه انکه ان اذا قلت حالا این مثال دیگه ای زده انک اذا قلت و علی لا حسنون این با لا که میاد این قشم مشخص قصر اضافی یعنی قصر چیه؟ قصر صفت در موصوف شجاع علیه و حسن نیست قصر صفت در موصوف. ما دیگه کاری به کار بکر و خالد نداریم میگیم شجاعت مال علیه مال حسن آقا نیست حالا مثلا و این المخاطب یعتقد دو اشتراک علی و حسن فشجاعا اگر مخاطب معتقد بوده هم علی شجاع هم حسن شجاع میگه من دیده بودم این شجاعت داشت اونم شجاعت داشت مردم معتقده ما میگیم نه آقا شجای علی لا حسن شجاع علی حسن نیست درست شو کان و پسر افراد قص میشه قصر افراد و ان كان حالا اگر ما گفتیم شجاعت مال علیه مال حسن نیست اون معتقد بود مال حسنه میشه قصر قلب و این کانه یعتق داد و ما ماتق کان کانه قصر قلب قصر قلب میشه. و این کانه مترددن و این کانه مترددن و اگر متردد باشه اگر بگو متردد باشه و این کانه دادن یعنی نمیتونه لا یدری ایوه و ما شجاع شنیدم این شجاع اون شجاع هر دو شجاع نمیدونم والا و این کانه لا لایکدری ایوه و ما شجاع و کان قصر قصر تایید قصر میشه قصر تایید قصر میشه قصر بستگی به مخاطب دارد بستگی به بگید مخاطب داری. حالا من یه مثال بزنم ببینید اینو میتونید تو هر ستا پیاده کنید این مثالی که من میگم این مثال ایشون شد که از شجاع و لا حسن. حالا من میگم به شما به یه نفر اصلا مخاطب زیدان طویلون لا قصیرن زیدون طویلن لا قصیرن زید غدش بلنده کوتاه نیست یعنی زید منحصر در قد بلندیه در قد کوتاهی نیست قصر موصوف در صفته زیدون طویرون لاقصیرون دیگه با صفات دیگرش کاری نده بس اون بین دو صفت بلنقد بودن و کتاقد بودن بوده من میگم زید بلنقد هست و کتاقد نیست این قصر موصوف در صفت از نوع اضافی هم هست درست شد بین دو صفت هم. حالا این آیا هر صفت حصر درش ممکنه؟ زیدون طویل لا قصیرون زید بلند و کوتاه قدر نیست ببینید گوش این الان قصر قلب توش ممکنه چرا چون ممکنه یه نفر زیاد ندیده شنیده که کوتاه قده باورم کرده کوتاه ما بهش یه آزادی بلند کرد کوتاه نیست. منعصرش میکنیم در بلند نه نکوتاه. قصر قلب ممکنه. درست شد؟ قصر قلب ممکنه. قصر تعینم ممکنه. چون هم شنیده بلند هم شنیده کوتاه مونده توش. نمیدونه بلند قده ما براش تعیین میکنیم زید بلند قد هست اما کوتاه اما قصر افراد همونطور که نوشتید ممکن نیست درست شد چرا به دلیل اینکه نمیتونه مخاطب معتقد باشه زید هم بلند هم کوتاه معتقد به هر دوتا باشه من بیام نصف کنم بگم نصف اعتقاد داره. چون اعتقاد به متناقض که نمیتونه داشته باشه درست شد؟ پس این قصر افراد توش ممکن نیست من خواستم یه مثالی بزنم که شما متوجه مطلب بشید. بحث قصر به طور کل تمام شد و درست و حسابی و کامل براتون گفتم جزوه نوشتید باید بشینید همینطور که ما داریم گفتیم براتون خوندیم اینها رو روی کاغذ یه خطی تو خطی فارسی بنویسید مثالهاش متعدد و مباحثش رو توی خلاصه کنید دو سه بار بگید البته فکر می‌کنم یاد گرفتید اینقدر من تکرار کردم فقط اینا فرار ممکنه تا اون بوقی که تو ذهنتون کامل جا بگیره یه بار یه بار نیاز باشه بازی کنید و اینها رو بالا پایین کنید بعد که یاد گرفتید دیگه اصلا مثال یعنی اون متنش مهم نیست من یاد گرفتی با. پس بنابراین بحث قصر رو به طور کامل خدمت شما گفتم یاد گرفتید نمیخوام دیگه نموزجش رو بخونم میخوام نموزج رو نگه دارم برای جلسه آینده که شما شرط با من دارید قول هست که با قول خودم یه نیم نگاهی به این مبحث بکنید انشالله جلسه بعد که میخوام بیام مسلط باشید روش که تمارین رو میخوام حل کنم بعضی از تمارین ممکنه غلط داشته باشه بعضیش بالا پایین باشه اینها رو ما میفهمید تمارین بسیار زیادی داره یعنی اون نموزجش متونه نظم نصره که اون بحث تمام بشه بحث قصر به طور کل بره تمام و دوتا بحث دیگر باقی میمونه از علم معانی که انشالله برای شما اونها رو هم خواهیم یکی از مباحث اصلی علم معانی همون بحث قصر که ما توی دو جلسه تا حالا داریم برای شما میگیم تازه یک جلسه بعد هم نیمیش فکر میکنم به بحث قصر تموم بشیم همه به خداوند صبحان میسکرم الله که در پناه خداوند صحت و سلامت کامل داشته باشید التماس دو ازتون داریم ما رو هم دعا کنید موفق و معید و منصور باشید خداوند بهتون عمر بایستت بده و السلام علیکم و رحمت الله و